دارم از ظلف سیاهش گله چندان که مپوز که چنان زو شده هم بی سر و سامان که مپوز کسب به امید وفا ترک دل و دین مکناد که چنانم من از این کرده پشیمان که مپوز به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست زحمتی میکشم از مردم نادان که مپوز از ما به سلامت بگذر که این می لع دل و دین می از دست به دانسان که مپرس گفت و گوهاست در این راه که جان بگدازد هر کسی عربده ای این که مبین آن که مپرس پارسایی و سلامت عوسم بود ولی شیوهی می کند آن نرگس فتان که مپورس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم گفت آن می در اندر خمشوگان که مپرس گفتمش زورف به خون کش کستی گفتا حافظین قصه دراز است به قرآن که مپرس